جهاد آلبیگایی اینو کاتیوس سوم میدانست برای نابودی کاتارها مجبور است گامهای دیگری بردارد پاپ پس از تکفیر کونت و اعلام مصادره تمام داراییهای او خواستار جهاد برای از بین بردن نفوذ کاتارها شد این اقدام به جهاد آلبیگایی شهرت یافته است که نام خود را از شهر آلبی پایگاه اصلی کاتارها گرفته است او به همه کسانی که در این جنگ صلیبی شرکت کردند، وعده بخشش گناهان دنیویشان را در روی زمین داد. اینو کانتئوس همچنین به کسانی که از گناهانی که در این دنیا مرتکب میشدند به راستی توبه می‌کردند، وعده شهریاری در جهان دیگر را میداد. جنگجویان صلیبی از سر تا سر اروپا در لانگدوک پایگاه قدرت کاتارها گرد آمدند، در حالی که انگیزه بسیاری آموزه های کاتولیکی بود. دیگرانی نیز بودند که چشم داشت به غنائم جنگ از جمله اموال کنت تکفیر شده ی تولوز آنها را جذب کرده بود. از اموال بدعتگزاران حفاظت نمی و در نتیجه جنگجویان صلیبی سراسر شهرها را غارت و ویران کردند. نماینده ی پاپ در آلبی در ژوئیه سال 1209 نامهی به اینو کنتیوس نوشت و به شرح ویرانسازی شهر بزیه، یکی دیگر از پایگاه‌های کاتارها که گرفتار جنگ صلیبی شد، پرداخت. حمله آغاز شد، فریاد برخواست، آماده جنگ، آماده جنگ. در ظرف دو یا سه ساعت افراد ما از خندق و دیوارها گذشتند و شهر بزیه را به تصرف درآوردند. به هیچ کس از هر مقام و جنس و سنی رحم نکردند و حدود 20 هزار نفر را از دم تیغ گذراندند و به کشتار وسیعی دست زدند. و تمام شهر را غارت کردند و به آتش کشیدند و این آتش خشم و غضب خداوند بود که به چنین شگفت آوری شهر را در کام خود فرو برده بود جنگجویان صلیبی چشم‌های بیش از یکصد نفر از مدافعان را درآوردند و بینی آنها را بریدند و برای هر کدام تنها یک چشم باقی گذاشتند تا باشد که بقیه عمرشان مضحکه دشمنان ما واقع شوند پاپ اینو از کاری که جنگجویان سلیبیش کرده بودند خوشنود بود. او نامهی حاکی از قدردانی برای سیمون دومونفور یکی از سرکردگان نظامی عملیات علیه کاتارهای آلبیگایی نوشت. ستایش و سپاس خداوند را که به دست شما و دیگران خطرناکترین دشمنانش را چونین بیرحمانه و شگفت آورانه و غم کرده است. اما با وجود ویرانگری فیزیکی در لانگدوک، سوزاندن شهرها و در هم کوبیدن غلعه ها و کشتن هزاران نفر، جهاد آلبیگایی کاتارها را نابود نکرد. این جنگ صلیبی که قرار بود کار خود را در ظرف چند ماه تمام کند، بیش از 20 سال به درازا کشید. کاتارها در میان دهقانان از حمایت بسیار گسترده‌ای برخوردار بودند و بسیاری از آنها توانستند برای مدت‌های طولانی خود را پنهان سازند. دیگر رهبران ها به ایتالیا و جاهای دیگر گریختند و در آنجا به پراکنش دیدگاه‌های مذهبی خود ادامه دادند. اسلحه به تنهایی نمی‌توانست عقیده‌ی نیرومند را از پا در آورد. آغاز به کار تفتیش عقاید پاپی. هنگامی که جهاد آلبیگایی به درازا کشید، اینو کنتیوس سوم سلاح دیگری را علیه کاتارها به کار گرفت که کمتر محلی و نیرومندتر بود. تفتیش عقاید پاپی دستگاه حقوقی تازه‌ای بود که زیر نظارت مستقیم پاپ قرار داشت. او مفتشانی را منصوب کرد که وظیفه داشتند به را بیابند، به جرایمشان رسیدگی و آنها را مجازات کنند. اینان صاحب منصبان مقتدری بودند که به دستگاه پاپی وفاداری کامل داشتند. اکثر این مفتشان راهبان صدقهگیری بودند که فقر، تجرد و اطاعت اختیار می‌کردند و زندگی خود را صرف خدمت به کلیسا می نمودند. این درویشان در همه جا آواره بودند و غذای خود را گدایی می‌کردند آنها به موعظه و آموزش دیگران می‌پرداختند و اعمال نیکوکارانه انجام می‌دادند فعالیتهایشان زیر نظر رئیس صومعه نبود بلکه پاپ از آنها حمایت میکرد و به آنها اختیارات مخصوصی داده بود که نه تنها به موعظه بپردازند بلکه اعترافات را هم بشنوند و به آمرزش و بخشش گناهان بپردازند در عوض وفاداری آنها به پاپ کامل بود راهبان دو فرقه مذهبی فرانسیسکنها و به ویژه دومنیکن ها در شکل گیری دستگاه تفتیش عقاید پاپی نقش بارزی ایفا کردند فرقه دومنیکن رسما در سال 1216 تأسیز شد. از آنجا که دومنیکن ها تیه قرن ها با تفتیش عقاید پیوند داشتند، به خاطر این ارتباط ویژه دومنیکین یا سگ شکاری خدا لقب گرفتند. فرقه های درویشی در مبارزه با بدعتگذاری مشارکت می کنند. این کانتیوس سوم به درویشان اعتماد زیادی داشت و دومنیکو دو گزمان کشیش اسپانیایی را که به سندمنیک مشهور است و در روم به ملاقاتش رفته بود می ستود. پاپ بیدرنگ دومنیک را فرستاد تا بکوشد با موعظه و استدلال کاتارها را هدایت کند. فرقه راهبان دومنیکی از میان مردانی شکل گرفت که در جنوب فرانسه با دومنیک تا هنگام مرگش در سال 1221 همکاری می‌کردند. فرانسیس اهل آسیسی نیز مانند دومنیک به روم رفت و اینو کنتیوس سوم مؤسس فرقه فرانسیسکن را وسیله دیگری برای مبارزه با بدعتگذاری یافت. فروتنی و پارسایی شدید فرانسیس پاپ را تحت تاثیر قرار داد. پاپ امیدوار بود الگویی که راهبان او فرقه راهبان فروتن به دست می‌دهند به دور ساختن نفوذ از بدعتگذاری کمک کند. همانطور که دومنیک و فرقش در فرانسه و اسپانیا علیه بدعتکزاری تلاش می فرانسیس نیز به آسیسی بازگشت و در آنجا بسیاری کسان از الگوی آوارگی و مععزگری او پیروی کردند و آنطور زندگی کردند که معتقد بودند عیسی زندگی کرده است. در آغاز فرانسیسکنها و دومینیکنها از خاست پاپ اینو کنتیوس پیروی می و با فروتنی به جستجوی بدعتکزاران می پرداختند. تا آنها را از لغزش باز دارند آنها می کشیدن نفوس منحرف شده را تشویق کنند که به راه آموزه‌های کلیسای کاتولیک بازگردند اما به زودی آشکار شد که تشویق و اقنابه تنهایی باعث نمی شود که کاتارها دیدگاه‌هایشان را تغییر دهند برای بازگرداندن یک پارچگی دینی در اروپا اقدامات بسیار شدیدتری لازم بود اینو کانتیوس سوم در سال 1215 بهترین متفکران کلیسا را گرده هم فراخاند تا به چنین روی کردهای تازهی شکل دهند. در یکی از نشستهای شورای لاتران بیش از 400 روحانی برجسته، اسقفها، رؤسای سومه ها و دیگران به موضوع بدعتگذاری و سرکوب آن پرداختند. در این جلسه توافق شد که تبعید و مصادره اموال مجازات‌های قابل قبولی برای بدعتگذاران است که از بازگشت به آموزه‌های کلیسا خودداری می‌کنند. در چهارمین شورای لاتران همچنین توافق شد که بدعتگزاران از کسب مشاغل دولتی منع شوند. افزون بر آن آنها نمی‌توانستند عضو شوراهای شهر شوند. حق نداشتند به عنوان شاهد در دادگاهها حضور یابند. نمی توانستند وصیت کنند و نمی توانستند برند. اینکه شورای لاتران می تواند این تغییراتی را اعمال کند به وضوح نشان میدهد دهد که در قرن سیزدهم های عرفی و دینی زندگی تا چه اندازه در هم تنیده شده بودند. رهبران سیاسی میدانستند دانستند که اگر به خواست مفتش محلی عمل نکنند، خودشان نیز ممکن است از سوی های تفتیش عقاید به زیر سؤال روند. در برخی از کشورها در گذر زمان تمایز بین حوزه اختیارات دولت و کلیسا تقریبا از بین رفت گسترش اختیارات دستگاه تفتیش عقاید در دوره گرگوریوس نهم برادرزاده این و کنتیوس سوم جانشین او شد. پاپ جدید گرگوریوس نهم اختیارات دستگاه تفتیش عقاید پاپی را افزایش داد. در سال 1252 کلیسا رسمن این موزه را اختیار کرد که بدعتگزارانی را که از ابراز ندامت خودداری می یا پس از مجازات به دیدگاه های خیش باز میگشتند برای اعدام از طریق سوزاندن تحویل مقامات دولتی دهند. این سیاست در یک فتفای پاپی رسمن اعلام شد. این سند نیز مانند اکثر چون اسنادی بر اساس چند واژه نخست متن لاتین آن معروف شد. اینو کنتیوس چهارم که به جای گیرگوریوس پاپ شده بود، ایده مجازات مرگ را به عنوان مجازاتی برای بدعتگزاران غیر نادم به رسمیت شناخت و تصویب کرد. این فتوا با استفاده از شکنجه از سوی ماموران تفتیش عقاید برای کسب اطلاعات از مزنونان به بدعتگزاری نیز موافقت می کرد. دستگاه تفتیش عقاید که بر اثر بیانیه های پاپ تقویت شده بود، در اوایل قرن چهاردهم به یک تشکیلات کلیسایی بین المللی و بسیار پر قدرت تبدیل شد. اختدار آن در قلع و غم بدعتگذاری و همینطور سایر جرایم علیه کلیسا در فرانسه، ایتالیا و بخشهایی از اسپانیا، همچنین لهستان، آلمان، پرتغال و بوهم پذیرفته شده بود. در برخی نقاط به مأموران معموران تفتیش عقاید، با عنوان اعلیحضرت دینی خطاب میشد که نشانه ی آن بود که به آنها با ترسی آمیخته با احترام نگریسته می شود. دستگاه تفتیش عقاید پاپی فرمان روایان کشورها را زیر نظر می گرفت و آنها می بایست در مسائل عقیدتی به مسئولان محلی این دستگاه پاسخگو باشند. مقامات کشوری به محض درخواست می بایست به مسئولیتهای این جهانی تفتیش عقاید عمل می کردند. تفتیش عقاید در بیشتر اروپا جزئی از زندگی بود. ما امروزه درباره نحوه عملکرد دستگاه تفتیش عقاید اطلاعات بسیار زیادی داریم که عمدتا به خاطر آن است که معموران تفتیش عقاید گزارش های دقیقی از اقدامات خود ثبت میکردند. از این رو در مورد منافع مالی تفتیش عقاید هویت کسانی که زیر بازجویی قرار گرفتند روش بازجویی، روشهای کار دادگاهها، و جزئیات مجازات هایی که طی قرنها تعین تعیین میشد اطلاعاتی در دسترس است. مخزنهای وسیع این اسناد دقیق در دوره انقلاب فرانسه در جریان ویرانسازی زندانهای تفتیش عقاید از بین رفت. اما آنچه باقی مانده برای بازسازی تاریخ اقدامات دادگاه های تفتیش عقاید و نظام حقوقی پیشینیان این اقدامات کفایت می کنند.